مصنوی معنوی مولوی برنامه 120م تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغامبر امت را که ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق الفت ندارند توتی در آینه می بیند و عکس خود را پیش او آورده رو در پس آینه آن استانهان حرف می گوید عدیب خوش زبان. توتی یک پنداشته کین گفت پست گفتن است کن در آینه است پس جنس خیش آموزد سخن بی خبر از مکر آن گرگ کهن از پس آینه می آموزدش ورنه ناموزد جز از جنس خودش گفت را آموخت زنمرد هنر لیک از معنی و سرش بی خبر. از بشر بگرفت منطق یک با یک از بشر جز این چه داند توتی یک همچنان در آینی جسم ولی خیش را بیند مرید ممتلی از پس آینه عقل کل را کی ببیند بی وقت گفت و ماجرا او گمان دارد که میگوید بشر وندگر سر راست او زان بی خبر حرف آموزد بلی سر قدیم او نداند توتی است او نی ندیم همسفیر مرغ آموزند خلق کین سخن کار دهان افتاد و حلق لیک از معنی مرغان بی خبر جز سلیمان قرانی خوشنظر حرف درویشان بسی آموختند منبر و محفل بدان افروختند یا بجز آن حرفشان روزی نبود یا در آخر رحمت آمد ره رح نمود صاحب دل دید سگ حامله در شکم آن سگ بچگان بانگ می کردند. در تعجب ماند که حکمت بانگ سگ پاسبانی است. بانگ در اندرون شکم مادر پاسبانی نیست و نیز بانگ جهت یاری خواستن و شیر خواستن باشد. آن یکی می دید خواب اندر چله در ره مادسگی بود حامله. ناگهان آواز سگبچگان شنید. سگبچه اندر شکم بود ناپدید. پس عجب آمد ورا انبانگها. سگبچه اندر شکم چون زد ندا. سگبچه اندر شکم نالکنان، هیچ کس دیده است این اندر جهان چون بجست از واقعه آمد بخیش حیرت او دم بدم می گشت بیش در چله کس نیک که گردد عقده حل جز که درگاه خدا از زوجل گفت یارب زین شکال و گفت و گفت در چله واماندم از ذکر تو، پر من بکشای تا پران پر شوم، در حدیقه ذکر و سیبستان شوم. آمدش آواز حاطف در زمان، کان مثال دان، زلاف جاهلان، که از حجاب و پرده بیرون نامده، چشم بسته بیهده گویان شده، بانگ سگ، اندر شکم باشد زیان، نه شکارنگیز و نه شب پاسبان. گرگ نادیده که من او بود، دوزد نادیده که دفع او شود. از هریسی، و از هوای سروری در نظر کند و بلافیدن جری، از هوای مشتری و گرمدار بی بسیرت پانهاده در فشار ماه نادیده نشانها می دهد روستایی را بدان کژ می نهد از برای مشتری در وصف ماه صد نشان نادیده گوید بهر جا مشتری کو سود دارد خود است. لیک ایشان را در او ریب و شکی است. از هوای مشتری بشکوه مشتری را باد دادند این گروه. مشتری ماست الله هشترا از غم هر مشتری هین برترا. مشتری جو که جویان تو است. عالم آغاز و پایان تو است. این مکش هر مشتری را تو بده است، عشق بازی با دو معشوقه بدست است. زو نیابی سود و مایه گر خرد، نبودش خود قیمت اقل و خرد. نیست او را خود بهای نیم نال، تو برو ارزه کنی یا و لال. هرس کورت کرد و محرومت کند، دیو همچون خیش مرجومت کند همچنان اصحاب فیل و قوم لود کردشان مرجوم چون خود آن سخود مشتری را صابران دریافتند چون سوی هر مشتری نشت آفتند آن که گردانید روز آن مشتری بخت و اقبال و بقا شد زو بری ماند حسرت بر هریسان تا ابد همچو حال اهل زروان در حسد. قصه اهل زروان و حسد ایشان بر درویشان که پدر ما از سلیمی اغلب داخل باغ را به با مسکینان می داد، مرد صالح ربانیه اقل کامل داشت و پایاندانیه. در ده زروان به نزدیک یمن شهره اندر صدقه و خلق حسن کعبه درویش بودی کوه او آمدنده مستمندان سوی او همز خوشه عشر دادی بیریا، همز گندم چون شده از که جدا. آرد گشتی عشر دادی هم از آن، نان شده عشر دگر دادی زنان. عشر هر دخل فرو نگذاشتی، چار باره دادی زنچه کاشتی. بس وسیحت ها بگفته هر زمان جمع فرزندان خود را آن جوان. الله الله قسم مسکین بعد من و مگیریدش زهر سخیشتن تا بماند بر شما کشت و سمار در پناه طاعت حق پایدار، داخل ها و میوهها ها ز غیب حق فرستاده است بی تخمین و ریب در محل دخل اگر خرج کنی درگه سود است سود برزنی. ترک اغلب داخل را در کشتزار باز کارد که ویست اصل سمار. بیشتر کارد خورد زان اندکه که ندارد در بروییدن شکه زان بیفشاند بکشتن ترک دست کن غلاش هم زانزمین زمین حاصل شده است که هم آنچه افزاید زنان میخرد چرم و عدیم و سختیان که اصول دخلم اینها بودند هم از اینها می گشاید رزق بند دخل از آنجا آمد استشلاجرم هم در آنجا می کند داد و کرم این زمینو سختیان پردست و بس اصل روزی از خدادان هر نفس چون بکاری در زمین اصل کار تا بروید هر یکی را صد هزار گیرمکنون تخم راگر کاشتی در زمینی که سبب پنداشتی چون دو سه سال آن نروید چون کنی جز که در لابه و دعا کفدرزنی. زنی دست بر سر میزنی پیش عله دست و سر بر دادن رزقش گواه تا بدانی اصل اصل رزق اوست تا همو را جوید آنکه رزق جوست رزق از وی جو مجو از زید و امر مستی از وی جو مجو از بنگ و خمر منعمی زو خواه نه از گنج و مال نصرت از وی خواه نه از ام و خال عاقبت زینها به ماندن هین که را خواهی دراندم خواندن. این دمو را خان و باقی را بمان تا تو باشی وارس ملک جهان. چون یفر مر او آید من اخی یهرب ربول مولود من ابی. زان شود هر دوست آن ساعت ادو که بوت تو بود و از ره او. روی از نقاش رومی تافتی چون ز نقش انس دل می یافتی ایندهمر یارانت با تو زد شوند بس تو برگردند و در خسمی روند هین بگو نکروز من پیروز شد آنچه فردا خواست شد امروز شد ضد من گشتند اهل این سرا، تا قیامت عین شد پیشین مرا. پیش از آن که روزگار خود برم، عمر با ایشان به پایان آورم. کاله معیوب بخریده بودم، شکر که از عیبش بگه واقف شدم، پیش از آن که از دست، سرمایه شده، عاقبت معیوب بیرون آمده. مال رفته، عمر رفته ای نصیب، مال و جان داده، پای کاله معیب. رخت دادم، ذر قلب بستدم، شاد شادان سوی خانه می شدم، شاکر کینزر قلب پیدا شد کنون، پیش آن که آمر بگذشتی فزون. قلب ماندی تا ابد در گردنم، حیف بودی آمر زای کردنم. چون بگهتر قلبی او رونمود پای خود زو کشم، من زود زود، یار تو چون دشمنی پیدا کند، گر حقد و رشک او بیرون زند، تو از آن ایراز او افغان مکن، خیشتن را ابله و نادان مکن، بلکه شکر حق کن و نان بخش کن، که نگشتی در جبال او کهن. از جوالش زود بیرون آمدی تا بجویی یار صدق سرمدی نازنین یاره که بعد از مرگ تو رشته یاری او گردد ستو آن مگر سلطان بود شاه رفیح یا بود مقبول سلطان و شفیح رستی از قلاب و سالوس و دغل غره او دیدی ایان پیش از عجل این جفای خلق با تو در جهان گربدانی گنج زر آمد نهان خلق را با تو چونین بدخو کنند تا تو را ناچار رو آنسو کنند این یقین دان که در آخر جمله شان خسم گردند و عدو و سرکشان تو بمانی با فغان اندر لحد لا تذرنی فرد از اهد ای جفایت به ز عهد وافیان هم زداد توست شهد وافیان بشنا از عقل خدای انباردار گندم خود را به ارز الله سپار تا شود ایمن ز دزد و از شپوش دیو را با دیوچه زودتر بکش کو همی ترساندت هر دم ز فقر همچو کپکش ساید کن ای نر سقر باز سلطان عزیز کامیار ننگ باشد که کند کپکش شکار بس وسیعیت کرد و تخم وز کاشت چون زمینشان چوره بود سود نداشت گرچه ناسه را بود صد داعیه پند را عزن بباید واعیه تو به صد تلطیف پندش میدهی، دهی او ز پندت می پهلو تهی یک کس نامستمع زستی ذرد صد کسی گوینده را عاجز کند زنبیا ناصحتر و و خوشلهجه تر کی بود که گرفت دمشان در حجر؟ زان کوه و سنگ در کار آمدند می نشد بدبخت را بکشاده بند آنچنان دلها که بودشن ما و من ناتشون شد بل و قصوتن بیان آنکه عطای حق و قدرت موقوف قابلیت نیست همچون داد خلقان که آن را قابلیت باید زیرا عطا قدیم است و قابلیت حادث عطا صفت حق است و قابلیت صفت مخلوق و قدیم موقوف حادث نباشد، و اگر نه، حدوث محال باشد. چاره آن دل عطای مبدل است. داد او را قابلیت شرط نیست. بلکه شرط قابلیت داد اوست داد لب و قابلیت هست پوست. اینکه موسی را عسی سعبان شود همچو خورشید کفش رخشان شود صد هزاران معجزات انبیا کان نگنجد در زمیر و عقل ما نیست از اسباب تصریف خداست نیست هارا قابلیت از کجاست قابلی گر شرط فعل حق بودی هیچ معدوم به هستی نامدی، سنت بنهاد و اسباب و طرق، طالبان را زیر این ازرق توتق. بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. سنت و عادت نهاده با مزه، باز کرده خرق عادت معجزه. بی سبب گر عزب ما موصول نیست قدرت از ازل سبب معزول نیست ای گرفتار سبب بیرون مپر لیک ازل آن مسبب زن مبر هرچی خواهد آن مسبب آورد قدرت مطلق سببها بردارد لیک اغلب بر سبب راند نفاد تا بداند طالب جزتن مراد چون سبب نبود چه ره جوید مرید پس سبب در راه می باید بدید این سببها بر نظرها پرده هاست که نهر دیدار سن اشرا سزاست دیده باید سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخ و بان، تا مسبب بیند اندر لامکان، هر زداند جهد و عکساب و دکان، از مسبب میرسد هر خیر و شر، نیست اسباب و وسایت ای پدر، جز خیال منعقد، بر شاه را تا بماند دور غفلت چندگاه در ابتدای خلقت جسم آدم علیه السلام که جبرائیل علیه السلام را اشارت کرد که برو از زمین مشت خاک برگیر و بروایت از هر نواهی مشت مشت برگیر. <متصفح> چونکه که سانع خواست ایجاد بشر از برای ابتلای خیر و شر جبرائیل صدق را فرمود راو مشت خاک از زمین بستان گاو. او میان بست و بیامد تا زمین تا گذارد امر عالمین دست سوی خاک برد آن معتمر خاک خود را، در و شد هزر پس زبان بکشاد خاک و لابه کرد که از برای حرمت خلاق فرد ترک من گو و برو جانم ببخش رو بتاب از من انان خنگ رخش در کشاکش های تکلیف و خطر بحر لله هل مرا اندر مبر بحر آن لطف که حقت برگزید کرد بر تو علم لوح کل پدید تا ملایک را معلم آمدی دایما با حق مکلم آمدی که سفیر انبیا خواهی بودن تو حیات جان وحیی نی بدن برسرافیلت فضیلت بود از آن کو حیات تن بود تو آن جان بانگ سورش نشعت تنها بود نفخ تو نشو دل یکتا بود. جان جان تن حیات دل بود. پس زدادش داد تو فازل بود. باز میکاییل رزق تن دهد. سعی تو رزق دل روشن دهد. او به داد کیل پر کرده است زیل داد رزق تو نمی گنجد به کیل حمزه اسرائیل با قهر و عطب تو بهی چون سبق رحمت بر غضب حامل عرش این چهارند و تو شاه بهترین هرچهاری چهاری زنتباه. روز محشر هشت بینی حاملانش هم تو باشی افزل هشت آن زمانش همچنین بر می شمرد و می گریست بوی می برد او کزین مقصود چیست؟ مادن شرم و هیا بود جبرائیل بست آن سوگند ها بروی سبیل بس که لابه شو سوگند داد بازگشت و گفت یا رب العباد که نبودم من بکارت سرسری لیگ زانچه رفت تو داناتری گفت نامه که زهولش ای بسیر هفت گردون باز ماند از مسیر شرمم آمد گشتم از نامت خجل ورنه آسان است نقل مشتگل که تو زوری داده ای املاک را که بدرانند این افلاک را